Thank mm -hmm. you. کشید این من باره نمی آمد جرا اله می تو خب به نام خدا این جلسه گذشته در رابطه با بحث سازماندهی صحبت کردیم و گفتیم سازماندهی در سازمان یکی از کارکرتوهای مهم مدیریته و تفاوت سازماندهی رو با ساختار سازمانی مطرح کردیم گفتیم در بحث سازماندهی ما دقیقا مشخص میکنیم که افراد در سطح سازمان چه کاری رو باید صورت بدن یعنی کار افراد رو در سطح سازمان مشخص میکنیم که میشه سازماندهی و بعد بحث ساختار سازمانی رو مطرح کردیم گفتم در بحث ساختار سازمانی ارتباطات بین باهت ها و فرایند ها مطرح میشه گفتم سازماندهی مهمه باید از سازمان وجود داشته باشه ولی یه بحثی که ممکنه در صحت سازمان به وجود بیاد بحث الانیشنه یعنی از خود بیگانگی یعنی سازماندهی پیش از اندازه تخصصی کار کردنه بیش از اندازه برای افراد در صحت سازمان یا از خود بیگانگی به افراد میده که این بعد در شرح وظایف تحت کنترل بیاد گفت در شرح وظایف شما به سه آمد بعد توجه بکنید درست میگم یکی، یکی این بود نه؟ خب شرایط احراز گفتیم چهار پارامتره که در شرایط احراز یا eligibility criteria در شعر وظایف مطرح میشه یکی تجربه کاری تحصیلات آکادمیک آموزش‌های غیر آکادمیک و مهارت‌ها و در شرح وظایف شامل بسیار مهم باید مد نظر قرار گرفته بشه یکی ریسپانسیبلیتی یعنی مسئولیت‌هایی که فرد در قبال کاری که داره انجام میده باید داشته باشه یکی آتوریتیه، یعنی حدود اختیارات فرد و یکی پاوره گفتیم در رابطه با مدیران و افراد در سطح سازمان ریسپانسپیلیتی و آتوریتی یا مسئولیت حدود اختیارات توسط سازمان و افراد داده میشه ولی پاور توسط سازمان و افراد داده میشه پاور یه حسه، یه, یه قدرته، یه توانمندیه. توجه بکنیم که اینو بعد خود فرد داشته باشه و یکی از عوامل موفقیت افراد در سطح سازمان داشتن پاوره رسیدیم به بحث ساختار سازمانی در سطح سازمان گفتیم برای ترسیم چارت سازمانی یا انجام استراکچرینگ یا ساختار سازمانی در سطح سازمان رو کارت‌های مختلفی وجود داره سه تا رو کارت هست یکی روکرد صنتتی classی که کپیت گذشته بحث کردیم گفتیم سازمان ها برای تعیین ساختار سازمانش و ممکنه است روش های مختلفی استفاده کنند یه روش هست روش وظیفه که معمولاً اکثر سازمان ها ساختار سازمانشون رو بر اساس فانکشنال یا وظیفه ای تعیین می و تبدیل میکنند یه روش هست تعیین ساختار سازمان بر اساس محصول، بر اساس مشتری بر اساس منطقه جغرافیایی، که و همچه بر اساس بازار که افته گذاشته صحبت کردیم به این سراغ روی کرد های دیگه رویکرد کرد دوبار از ساختار سازمانی روی ترکیبیه یا بچمنده پروژه ماتریسی گروهی. داستان چیه؟ دقت می‌کنید؟ ما در سازمان ها دو نوع تولید داریم خب دو نوع تولید داریم تولیدات کالا و خدمات در سازمان ها به دو برون تحصیل میشه تولیدات خب یا مست پروڈاکشنه یعنی تولید انبو تولیدات کالا و خدمات خب یا تولیدات تولیدات پروژهی تولید انبوه با پروژه چه فرقی میکنه بکری در تولید انبوه خب سازمان میداند که چه محصولاتی رو باید تولید بکنه خب بر به تولیدش اقدام میکنه و فعالیت های مختلفی در رابطه با تولید محصول داخله خب و سازمان این فعالیت ها رو رعایت میکنه و یه محصولی رو تولید میکنه سالیانه ماهیانه به مشتریانش تحویل میده خب مثال تولید انبو، مثل تولید خود رو انا مثلا ایران خودرو اگر پجای 206 داره تولید میکنه این رو تولیده بشون میگن تولید انبو خب؟ میدونه آقا 206 رو تولید بکنه 206 هم یک سری فعالیتهایی برای تولیدش هست برای تولیدش دخیله اون فعالیتها رو انجام میده و خود روی 206 تولید میشود خب؟ تولید انبو مثل به بالفرز مثال دختر لباس مش تولید امبو تولید انبوه مثل ساخته یک قطعه متوجه هستی مثل برای فادمون فقط انبوهش چی میشه مثل؟ همین دوره ام الان شما ما در این مؤسسه داریم دور دوره ای برگزار میکنه میدونیم آقا دوره ام بی یی که ما باید برگزار بکنیم هی مدا در پریودهای مختلف این دوره برگزار میشه آژانس های گردشگری تورهای مختلفی رو برگزار میکنن که اول سال میدونن آن مثلا آخر سال چه تورایی رو برگزار کنن در چه زمانهایی اون شو تولید انبوه مثل <محصول> می بله مثل محصول شما پخت شیرینی هم میتونه تولید انبوه باشه ولی حالا بحثی که اینجا وجود داره اگر شما تولیداتتون تولید انبوه باشه ساختار سازمانی که برای تولیدات انبوه در نظر میگیرید ساختار در این کلاسیک ساختار ساختار کلاسیک اوکی؟ اینو به خاطر ای من دارم میگم ساختار ساختار کلاسیک جان. نه این مجموعه این مسلا داده پروژه ای کار میکنه ها این یه محصه دیگه است ببین گفتید پروژه این میشه حالت دوبه نه حالت دوبه ایش که اون پروژه رو مثلا اون مجموعه این پروژه داره میدهده ادامه میده. قرار اختیار انجام ده پروژه پرسنری انبوه میشه انبوه میشه ها خوب یه تفاوت عمده ای که تولید امبو با تولید پروژه‌ای داره حالا من از بیت تولید پروژه‌ای لامم بگم پس این تولید امبو شما اول میدونید یعنی میدونید چه کالا و خدماتی رو قرار تولید بکنید اوکی پروژه‌ای چیه؟ پروژه شما نمی‌دونید شما بر اساس شرایط بازار متوجه هستید نسبت به انجام یک سری پروژه اقدام میکنید خب نسبت به انجام یک سری پروژه اقدام میکنید و این پروژه یک بازه زمانی داره خب بازه زمانی داره که مثلا ممکنه یک سال دو سال سه سال طول بکشه پروژه که تموم شد کار شما هم تموم شده است بعد داری پروژه بعدی یا پروژه های بره. این میشون تولید پروژه ولی یه داستانی که اینجا وجود داره اگر تولیدات شما تولید پروژهی باشه ساختاری رو که دلیگه سازمان تو در نظر میگیره ساختار ترکیبیه خب ساختار تو ساختار ترکیبی که ساختار ترکیبی رو این رو خب مثلا تولیدات تو پروژهی ساخت هواپیما یه پروژه است بویند خب هواپیما پیما می‌سازند ممکنه در سال سه تا 4 تا پنج تا بر اساس سفارشاتی که می‌گیرن نسبت به ساخت هواپیما اقدام بکنه شرکت‌های ساختمان‌سازی اینا شرکت‌های پروژه محور هستن یا بعضی از شرکت‌های مهندسی پروژه‌ای که می‌گیرن در حوزه حالا مشاوره مهندسی بهبود توسعه ساختمان سازی اینا اینا اینا اینا شرکت پروجمنت ما بعدن این شرکت ها رو بهشون میگیم شرکت های پروژه مرن خب یه تفاوت اصلی رو که تولید انبوه متوجه هستید با تولید ای داره یک تفاوت اساسی حالا چجوری از صحبت هایی که من کردم بحث تنوع پذیری تنوع پذیری خب تنب و پذیری تنب و پذیری چی بود هفته گذاشو من توضیح دادم؟ ساختر نه نه نه تعریف تنب و پذیری چی بوده؟ هفته بیش خدمت رو گفتم؟ تنب و پذیری یعنی محصولات مختلف شما برای بازارهای مختلف داری تولید میکنید محصولات مختلف میدونی چی دارم بهت میگم؟ تنب و پذیری در شرکت های پروژه بسیار بالاتر از, از شرکت هایی که تولیده ه سبع ساعت همینه شما در شرکت های پروژه محور تنوع پذیری تو کلی بالاست. تنوع با پذیری یعنی محصولات مختلف داریم تولید میکنیم الان شرکت ایران خودرو که ما میگیم تولید انبک داره آقا چند تا محصول مثلا میزنه 8 تا 6 تا محصول. متوجه هستی؟ 5 تا دا محصول داره تولید می‌کنه در طول سال به میزان زیاد به میزان زیاد در حقیقت داره تعویض مشتریان میده. به تعداد زیاد خب؟ این شرکت اولیده هم بوده. حالا تعداد پرسونلش هم مکنی 15-20,000 نفر باشه خب؟ ولی شرکت من شرکت پروژه محوره خب؟ ما تعداد پرسونلمون بین 70-80 تا نفره اوکی؟ 70 نفر ثابت 10 نفر متغییر خب؟ و در سال به طور متوسط 100 تا پروژه انجام میدیم یعنی 100 نوع نومحصول مختلف داری پروژه میکنیم میدونی چی دارم میگم و... مسلمن، تنب و پذیری محسوده در تولید همبو بالاتر تعدادش کمتره میدونی چی دارم میگم؟ تعدادش کمتره ما در شرکت های پروژه محور، خب نمیتوانیم به سمت ساختار کلاسیک بریم امکان پذیر نیست، چرا؟ چرا؟ چرا ما ساختار وظیفه‌ای رو برای شرکت های پروژه محور نمیتونیم اجرا تقدیم نه ممکنه نفرها تا تغییر نکنه نفرات تغییر نمیکنه ولی وظیفه ای نمیتونیم بری جلو. چرا؟ چون باید به عزیزی تحبیلاتی بزرگی کنیم چون باید؟ چون خود ساختاری کراسیک چی میشه؟ نه نه چیه؟ چرا عبده پیش من خدمت شد توضیح دارم اول صحبت هم گفتم کلاسیک مثل وزیفه. گفتم ساختاره که دستت مثلا ساختاره یک هفته پیش گفتم ساختار بر اساس محصول بر اساس مشتری بر اساس بازار خب چرا ما در شرکت پروژه من نمیتونیم از ساختار کلاسیک استفاده کنیم بحث زنی اینه جناب متناوب واسه کاری که داریم انجام تو ساختار کلاسیک کارا سریه تکراریه هر هم یه کار تکرار میشه خب اما تو پروژه فهم می‌کنه احتمال داره یه نفر دو تا پروژه دو تا ببینید در ساختارهای پروژه محور ببینید در ساختار وزیفهی در ساختار وزیفهی ما لقط یا جمله یا پوزیشن تحت عنوان مدیر پروژه نخواهیم داشت چون یه سری محصولات ثابته که در میزان زیاد سالانه تولید میشه خب نیازی نیست که ما یک مدیر پروژه داشته باشیم ولی در ساختارهای پروژه مهور یا ساختارهای ترکیبی در سازمانهای پروژه محور ما نیازمند مدیر پروژه هستیم برای پروژه های مختلف و این مدیر پروژه از اتوریتی بسیار بالای در سازمان برخورداره چه باسه اصلا بعد از مدیر آمد به مدیر پروژه باشه؟ اوکی؟ به خاطر همینه که ما در ساختار سازمانهای پروژه مهور نمیتونیم از ساختار ترکیبی استفاده کنیم. نمی‌تونیم. نمی‌تونیم. خیلی سخته. ما می‌گیم که تو ساختار پروژه محور، ساختار ترکیبی دیدیم. ما از ساختار کلاسیک نمی‌تونیم استفاده کنیم. در سازمان‌های پروژه محور حتماً باید ساختار کلاسیک باشه. چرا؟ چون ما می‌خوایم مدیر پروژه داشته باشیم. ببخشید. در سازمان‌های پروژه محور ساختار باید ساختار ترکیبی باشه. بباشد. چرا؟ چون ما میخواییم مدیر پروژه داشته باشیم. مدیر پروژه از اتوبتی بسیار سلباری برفرداره. باید داشته باشه. باید داشته باشه. یک یعنی اصلی که اینجا وجود داره و من بگم مدیریت سازمانهای پروژه محور بسیار بسیار بسیار, بسیار سختتر است از ساخت سازمانهایی که تولید امکان دارد. بسیار سخته. به خاطر اینکه چون ما و پذیری محصولاتت بالاست. می‌دونیش درا میان خیلی داستان داره خیلی داستان داره شما تو تولید انبوه اوکی سال اول یه سری مشکلاتی داری سال دوم ولی دیگه هیچ میدونه برات جا میفته آقا مثلا من این مارکر رو می‌خوام تولید کنم مشکلاتش چیه برای تولیدش چه تعمی کنندگانی می‌خوام چه تکنولوژی می‌خوام چی چی چی چی؟ دیگه دستتون میاد ولی سازمان‌های پروژه محور متوجه هستی چون تنب و پذیریه محصولات و خدمات العاده بالاست هر محصول داستان خاص خودشو داره به قول من رو قروفر خاص خودشو داره مدیری عدنی سازمان ها العاده سخت. خب؟ نکته این نکات تا حواستون باشه دیگه من نمی نیمسن پایه تخته نکته بسیار مهم سازمان های پروژه و افرادی که درش کار میکنن از تخصص بالاتری برخوردار هستند. چرا؟ چرا؟ چون محصول چون فهم نه من دارم میگم سازمان های پروژه محفر حالا مدیر پروژه از مهندسینشه، کارشناسانشه افرادی که در سازمان های پروژه محفر کار میکنن تخصصشون بالاست چرا؟ چون... از سازمان هایی که تولید هم بود دارم. چون در هر پروژه تخصص جدید میاد میشه که اینها بیران رو نکست بیکنن خوب، خود به خود تخ چون تنوع پذیری محصولات و خدمات شما بالاست یعنی هی شما محصولات مختلف تولید میکنید افرادی که درگیر محصولات مختلف هستن طبیعتاً به صورت مستمر دارن آموزش میبینن به صورت مستمر تخصص و مهارتشون در سازمان افزایش پیدا میکنه تولید اب یه روش مستقیم خاصه شاید یکی دو نفر دو سه نفر در تولید ان بود تخصص داشته بقیه یه کار لتیو دارن انجام میدن چونکاری لینو دارن انجام میدن طبیعت تخصصشون رو فوق العاده پایین داره. حالا داستانی که اینجا وجود داره در سازمان های پروژه محون یا سازمان های مدیریتش داستان داره. چرا افراد تخصص بالاتری دارن و از قدرت چانهزنی بالاتری در سازمان برخوردارن. قدرت چانهزنی در سازمان به شتناک اینم مدیریت سازمانم میدونه. بالاخره وقتی که فرض کنم من مدیر پروژه خب 10 سال تو سازمانم داره کار میکنه. به قدر 600 تا پروژه رو هندل کرده. این آدم عادی نیست. میدونه اینجوری نیست که آقا تو برو یکی دیگه ولنگ شه بیاد. قدرت چانه زنی اینا بالاست. چون قدرت چانه بالاست، مدیریتشون هم فوق العاده فوق العاده داستان داره. مدیریت شرکت های پروژه این از مدیریت بله و دلیل دیگه مدیریت سازمان های پروژه محور سخته به خاطر تنبو پذیری و مدیری که میخواد سازمان م... پروژه محور بخونه معلوم مدیریت کنه پیگیری بسیار زیاد رو باید انجام ما بگیم مدیر از جات رو بگم سازمان های پروژه محور باید سگ باشه نه سگ با نه سگ. سگ یعنی صاحب گانت ما بگیم مدیر سازمان های پروژه محور باید سگ باشه من با سین نرمشتم با سات نوشتم. یعنی صاحب گانت گانت یعنی برنامه یعنی صاحب برنامه باید باشه یه پیگیری بسیار جدی رو باید انجام البته، چه آچار چلهای اوکی مدیر سازمان های پروژه منبر واقعا باید سگر باشه از جنس سینش <تصفيق> خب دارم میگم بله چتی دارم میگم حالا ما میگیم سگ هم میخواد بگیم صاحب گان ولی واقعا باید سگ باشید کار در جلو چون تنف و پذیری پروژه و شکلات زیاد هر کدومش از خاص های خودش هر کدومش سازمان های خاصه خودش داره هر کدومش و اصلا خیلی از این نگرش اون مدیر سازمان نمیتونه رو به جلوی دیگت میکن بسیار دارد و من امینه کلامتون مدیرانی که در سازمانهای پروژه مهمر دارن کار میکنن به نوع این مشخصه رو دارن بسیار جدی، بسیار خشن بسیار پیگیر بسیار پیگیران ببین بعد مدیران پخصیم بنده بیرن بعض از مدیران شما ببینیدون که آروم یک یک معروف کاراکتریستیک خیلی آرومی دارن، شخصیت خیلی آرومی دارن. کارو خیلی مود کنترل می‌کنه، کنترل می‌کنه در جلسه. نه، مدیر سازمان پروژه من با با این, این نگرش چه تو سازمان بودی جات. جان، اصلا سازمان من قسم سازمان، قسم از این شرکت سازمان یه شدت مشاوره ای، یه راه هم تو پروژه کار می‌کنه. ولی این تو نمی شه که اونا کارشون فورید انبر خدمات، آره، نه، مبیل خدمات چه مشاوره؟ چه مشاوره رو می‌دن؟ مشاورهای برای شرکت‌های کار پروژه‌این. میگی کلی دامنه نیست. چون چون این چه شرکت‌های مشاوره‌ای در سال پروژه‌های مختلف دارن جهت انجام مشاوره که هر کدمش داستان‌های خاص خودشه. یه موقع از پروژه مشاوره‌ای می‌گم برای شرکت X، یه موقع از پروژه مشاوره‌ای می‌گم برای شرکت Y، بر شرکت Z. X، Y، Z سه تا شرکت متفاوت داستان‌های خاص خودشه. سه نوع پروژه میشه تعهد پذیرش خالص. فالوور های خوبی نیستن نگه این وقتی ما میگیم قدرت چانه زنی پرسونلی که در سازمان های پروژه محور کار میکنن بالاست پیروان خوبی نیستن تو سازمان فالوورای های خوبی نیستن چون نه خودشانه زنیشون بالاست تخصصشون بالاست هرچی که سازمان میگه به راحتی نمیمزیرن زیر بار نمیرن خا چرا و ولی نکته بسیار مهم ولی نکته بسیار مهم مدیر پروژه وقتی قالیک پروژه رو تکمیل بکنه یه پروژه رو قرار تکمیل بکنه از ای تا مسئولیت اون پروژه رو داره از تامین کننده از تولید از تامین مواد متریال نیروی انسانی پول بودجه هزینه متوجه کیفیت برو تا آخر تا بخواد اون محصول یا اون پروژه تولید بشه بحث مدیریت ارتباط با مشتریان خب طبیعتاً این فرد از مسئولیت بالا و آتوریتی بالایی برخورداره خب؟ این مدیر هم خب... آره، بقول شما یک مدیر هر این قدرت چانه زنیشون رو بالا دیگه کانفلیکت که به وجود میاد میدن هر دستوران عمل، اینسترکشن رو را به راحتی اینا نمیپذیبن بیه جورای خود رعیم در سطح سازن فرمانده خاص خودشون رو یه مدار سخته، جان است بخش انبوه مدیریت پروژه دیگه معنی پیدا نمی‌کنه میشه مدیر ناظر آره بنویم آره بنویم خب ساختار ترکیبی چیه دقت کنید ساختار ترکیبی شما مدیر عاملی دارید خب پروژه یک مدیر پروژه دو خب این یه ساختار برای برزنان برای ساختار های ای این یه ساختار میتونه باشه خب مدیر بازاریابی دارین مدیر تولید دارین مثلا مدیر مادیده درسته؟ درسته؟ باید. مدیر پروژه شما افراد افرادی رو زیر مجموعش داره برای تولید یک پروژه خب این باز به همین صورت خب مدیر پروژه هم مثل مدیر پروژه تو، این ها مدیر پروژه یک و مدیر پروژه دو اینا خودشون مدیر شرکت هستند یه سازمان هم. خب این سازمان رو از جرت ما بهش میگیم ببین مدیر پروژه یک مدیر یک سازمان کوچیکتری که در دل این سازمان قرار گرفته شده این سازمان ما بهش میگیم SBU بی یو business یونیت یعنی یک واحد کسب و کار استراتژیک. می‌دونید چی دارم میگم؟ یک واحد کسب و کار یعنی عملاً مدیر کسب و کاره در دل خود سازمان. خب؟ مدیر پروژه دوام هم به همین صورت، مدیر پروژه یکم هم به همین صورت، خب؟ و کاری که مدیر بازاریابی، مدیر تولید، مدیر مالی انجام میدن خدمات به اینا یعنی مدیر بازاریابی بازاریابی میکنه برای این پروژه و برای این پروژه خب مدیر مالی خدمات مالی میده برای پروژه یک و برای پروژه دو خب این این قسمت, رو این قسمت رو بهش میگن ستاد خب ستاد و این دوتا رو بهش میگن استراتیجی بیزینس یونیت یا اسپی یو یعنی یک واحده کسب و کار استراتژیک تا در دل خود سازمان تعریف شده این ساختار میشه ساختار پروژه یا ساختار ترکیبی ساختار خاصی ستاد, ستاد مدل انگلیسیش چیه جان ستاد. non operational non operational units متوجه شدی واسنشه بله تو این مدیر پروژه این زیر مجموعه میتونه این این ستاد باشه یا نه میتونه برد. میتونه میچونه مثلا خود مدیر پروژه پروژه‌دکتر مدیر مالی داشته باشه که تیم باشه با مدیر مالی ستاد در واقع. حالا کارهای مالی خودش رو انجام بده تو پروژه <تصفيق> یا کارهای اداریش انجام بده یا چه واسه مدیر داشته باشه ولی خب ختمش اصلا مثلا ستاد میده. نه اینکه اینا تولید دستشونه و از این تازه پروژه دستشون رو میدونی و کار اجرا دارن انجام میدن مدیران پروژه خودت چانه زنی فوق‌العاده بالای برخوردارن. خب حالا داستانی که وجود داره <تصفح> یه مثال دیگه من بزنم پاک <تصفح> <ها> کنم اینو <تصفح> <تصفح> <تصفح> یه شرکتی من مشاوره می دادم شادت برشکستم شد مدیر احمدی داشت بعد از یه مدت برشکست شد باید گفتم اون مختر گفتم با این روشی که داریم میری جلو و شکست میشیم یه نکتر بهتون بگم مد نظرتون باشه رمز موفقیت یک مدیر در سازمان جلسه آخره من جلسه اولم یه به قول معروف اشاره میعذیه کردم توزید دادم خدمتون مدیر یک مدیر در سطح یک سازمان باید 70 در مهارته محارته به قول معروف ادراکی داشته باشه 70 تا 80 درصد 20 تا 30 درصد باید مهارت فنی داشته باشه این خیلی مهمه و بتونه دقیق بیزینس رو تحلیل بکنه بتونه سازمان رو تحلیل بکنه این مدیر این من متاسفانه حالا من مهارت ادراکی رو زیادش غذابتی نمی کنم. چون حالا بخواب اونم واردش بشم خیلی داستان داره محارت فنی صفر نسخه کاری که داشت تو سازمان انجامش صفر. نه یک درصد، دقیقاً 0 درصد. به ببینید مدیر بس سر در بیاره که نفرش داره چیکار میکنه. این دیگه حداقل به قول معروف ریکوایرمنت که یا الزاماتیه که ما از یک مدیر انتظار داریم. باید حداقل سر در بیاره که ها نفرش داره تو سازمان چیکار میکنه. داستانی که وجود داشت. حالا من ساختار سازمانی رو میکشم. ببینید این سازمان شرکت آسا سفر آسا خب محصولات در مافزار آسا که میکرد در تولید میکردن خب یه در افزار گردشگری تولید میکردم به نامه در مافزار آسان حالا ساختار چجوری بود؟ مدیریت، مدیر مالی، مدیر اداری، مدیر مالی، مدیر برنامه‌ریزی، مدیر خدمات. و تا آخر. حالا آره اینام زیر مچ خاص خودش رو خب. امشیر کتایش می‌آسای. حالا اگر علی، اره علی درست ارکادی در بیش می‌کنه. علی نیست خب، این زیر مچ خاص خودش رو داشت. و. یه واقعی اینجا داشت به نام مدیر پروژه آسا زیر زیرمجموعه خاصه خودش مدیر خدمات، مدیر اداری، مدیر مالی و مدیر برنامه خدمات می دادن به پروژه آسا که مدیر پروژه داشت اینو میگه ساختار ترکیبی این آقا با شکست شدن از سه سال چون اطلاعات فنیش در رابطه با پروژه آساس سیف بود مدیر پروژه آساس قشنگ سرش کلا روزشد خیلی مهمه تو سازمانهای پروژه محبب اگر اطلاعات فنی فنی نسبت کاری که داره انجام میشه کم باشه قشنگ سر تو کلا بذاره میتونن سر تو کلا بذاره مدیران پروژه بسیار بسیار بسیار, بسیار رحمیت داره اوکی؟ فقط ببینید صوت خب در چه حد باید باشه اطلاعات ببین همینی که شما بدونی، طلب به من، من الان تو سازمان خودم ما داریم توربین تولید میکنیم اگه میگن آره ما زنده در تولید توربین تولید کن من بلد نیستم توربین تولید, تولید بکنم. یعنی روش کاری نمی‌دونم چجوریه. میدونم چجوریه، نحوه کارو. بلد نیستم. خب، در این وقت که توربین داره تولید میشه، من میدونم آقا کار داره درست انجام شده قراره اینو میدونم. مثلا آقا زمان میدن مثال در خدمت آموزش این فعالیت سه روز زمان برد سه روز زمان میبره مثلا روز زمان داره روز زمان میبره قیمت مثلا ریختگر برای من میارن مثلا میگن آقا کلی هزار تومان من میدونم مثلا برای اون پروژه خاص کلی 50000 تومان بالاست پایین معقوله غیر معقوله در این حد مدیر بعد دونه بعد مثلا سازمان هست نداشته پا میشه سازمان های پروژه میبر. تو هایی که تولید انبوه داره این هر ما حساسیت نداره تولید انبوه چه کاری روتینه که داره انجام میشه خب ولی سازمان های پروژه محور خیلی داستانه خیلی داستان فنی داشته باشه حتی تو کلاسیک اطلاعات اطلاعات فنی هم باید باشه آره ولی 100 درصد آره ولی تو سازمان‌های پروژه محور خیلی شدتش بیشتره شدتش فوق را بیشتر از این دیدی که موگی باید اطلاعات فنی داشته باشه مثلا شکرات خودم هم براتون بکشم و ادامه بدیم اصلا حسن فاک نکنم یعنی میشه گفت در حقیقت از اون زیر مجموعهایی که دارم فعالیت میکنن از هر کدومشون یه مقداری رو بدونه دقیقا اصلا کود نویسی بلد باشنم اصلا چیزا میدونم گرافیک بلد خوا یعنی خود مجموعه ای که داری آشون کار میکنیم ناخاسته میانه یه سری اطلاعاتو بهت میدن دیگه شما باستن... اگه اطلاعاتو داشته باشید. این واقعیتیه من خودم الان بعد از چهار سال که مدیر شرکتم تازه یه سری های دستم میان میگم اه مثلا چرا من این خیلی بایده خودشونم خود؟ بازگو میکنن دیگه براتون جا؟ میکن. خودشونم بازگو میکنن ناخاسته بله خب من یه مثال دیگرم بذارم از چیزی باید خب باید اداره بدیم بحثا ساختار سازمانی ما، در سازمان ما، ساختار پروژه محوره خب من اینا رو بیم کنار خب ببینید، بزن بزرگش کنم دقت کنید، در سازمان های پروژه محور ما دو واحد داریم، یه واحد شد واحد ستان درسته؟ یا باید هم شد باید؟ سبیو هایی که وجود داره یعنی اون باید های طولیدی که وجود داره باید ستاد مشخصه منیجین ڈیرکتر مدیر عامل زیر مجموعه هاشن مثل مدیر مالی،, مدیر مالی مدیر مالی مدیر منابع انسانی دفتر مدیریت اوکی؟ میای پایین تر میرسی به معاملت بازرگانی کامرشیال وی پی که بحث بازرگانی بازار یابی، فروش. انجام میشه و قرار داد تا آرندی، تحقیق و توسعه متوجه در سطح سازمان و این مجموعه که وجود داره و معاونت سیستم و استراتژی بحث سیستم و استراتجی. در سطح سازمان خب؟ ساختار سازمانی و مبانی مدیریت و تعریف کار و و و و, و, و, و اینا تا آخر اینا میشه قسمت ستات متوجه هستید ما قسمت دومی داریم به نام شما پرسیدی ستار چی میشه یا corporate division. corporate هم بهش میگه قسمت دوفم قسمت دوم یعنی قسمت strategic بزنس یونیت ما یا SBU ما یا قسمت تولید ما در حقیقت ماولت تولید داریم یا ماولت اجرا متوجه و مدیر لوجستیک و حمل و نقل اوکی وزیر نظر وزیر نظر مدیر لوجستیک بذر بخوام ماولت اجرا ما دو تا یونیت داریم دو تا استراتیجیک بیزینس یونیت داریم دو تا اس داریم خب مدیر پروژه های ماشینری مدیر پروژهای توربو ماشینری ماشینری ما تولید قطعه میکنه یه پروژه از پروژهای مختلف توربو ماشینری ما تولید ماشینالات دبارو میکنه دو تا اسپیوس خ... نقطه چینم حالا میرسی مادر حالا بهش میرسی متوجه داستان چیه یک سوال تو ساختارهای سازمانی و چارتای سازمانی بعضا شما دیدید که بعضی از ارتباطات با خط سیاه. سیاه یا مستقیم نشون داده میشه و بعضی از ارتباطات با نقطه چینه دقت کنید ارتباطات بین ها بعضی از ارتباطات با خط مستقیمه بعضی از ارتباطات با نقطه چینه فرق خط مستقیم و نقطه چی تو صافتار سازمانی چیه می‌دونید؟ نمیزیم ها؟ نمیزیم ببینید؟ اصلی میشه. میشه یعنی چی اصلی و فعلی؟ یعنی اونایی که خط صافه اصلی اونا ارتباطت فعلیه نقطه چی نیگاهی به اونا های دو جه میشه نه نه ببینید ما خط میکشیم خط مستقیم میکشیم و نقطه چی نمیکشیم یعنی اینا ارتباطات بسیار زیاد و در یک واحد قرار دارن متوجه هستید؟ وقتی که نقطه چین میکشید یعنی با هم همکاری میکنن کوپریشن با هم انجام میدن تا به یه هدف خاصی برسن الان این واحد ها متوجه هستید که با خط صاف بخار معروب با خط مستقیم با هم ارتباط داده شدن یعنی ارتباطات نزدیک و در یک واحد یا در یک سازمان دارن کار می‌کنن ولی این دو نفر با هم دارن همکاری می‌کنن کوپریشن دارن انجام می‌کنن اوکی؟ خط مستقیم و نقطه چین. ببین خط مستقیم یعنی که واحد های مختلف وقتی با خط مستقیم با هم در ارتباط هم می‌دونیش مثل این خط، مثل ای دو تا واحد یا در یک واحد ها. یعنی در یک واحد و ارتباطات نزدیکی با هم دارن خب ولی وقتی که ما نقطه چین ما داریم نمایش میدیم یعنی با هم, هم همکاری و هماهنگی دارن همکاری میکنن، کپریشن میکنن در یک واحد نیستن الان همون کجا قرار میگیده؟ چی؟ تو سازمان کجا قرار میگیده؟ همین اینا؟ نقلیه شما، علماد شما، من بذاره کچکتر کنم که بهتر میگید مستقیم از این نظر مدیر آمره مستلم این نظر؟ بله این معاملت احنا مشخص نیست؟ که این تولیدتون تماماً تو دید تو چی بازی زمان مدیر آمره و ارتباط شد چی جوری دادید؟ نه با خط چون توی صفح یه صفحه جانبی شد توی بگر توی یه صفحه که بیاد یه خط مستقیم داره که به مدیر آمره شده خب یه سؤاله دیگه من دارم شما در این چهارت سازمانی بعضی ها یا در چهارت های سازمانی مختلفان هم از کارش بشید من پاک کنم اینا در چهارت سازمانی شما بعضا این لغت هم اما این سال هفته پیش از شما داشتم گفتم فرق سی او درسته؟ برست منیجن ڈیریکتر خب؟ و پریزیدن چیه؟ گفتم معانی که این ستا داره هر ستا چنین مدیر میدی، یا مدیر هر شد. اگه بری تو دیکشنری پیدا کنی. و این ستا با فرق میکنم، فرقش چیه؟ صحب، so, پریزیدن برای تشکیلاتی که, تشکیلاتی که مدیر ندارن یعنی مثلا تشکیلات بیشتر دولتی استفاده میشه او یه ای که به عنوان چیف Executive افیسر توی, Officer. توی آم. آمریکا استفاده میشه تو بریتانیا منیجینگ دایرکتور بهش میگن تو سازمان‌های کوچیک به معنی مدیرعامل در سازمان‌های بزرگ و به من... در سازمان‌های کوچیک به معنی مدیرعامل در سازمان‌های بزرگ به معنی مدیر کل منیژین دایرکترم مدیر اجرایی که وظیفه برقراری ارتباط به محیطای بیرون از جمله کارفرمایان و کارمندان و تصمیم گیری در رای سیاست و استراتوژی رو دارد دیگه پرزیدنت کامل خوب بود کامل نبود پریزیدنس باید همیشه به حیط مدیره بزارش بده از خودش همیشه باید همیشه به حیط مدیره بیشد بزارش بده بعد یعنی بعد پسخردانی اصلا هیئت مدیره رو داره سی ای او با برنامه‌ریزی استراتژیست شرکت عمل میکنه و اهداف بلند مدت و ریسکایی که در آینده ممکن تو شرکت اتفاق بیفته رو در نظر می‌گیره خب بعد منش این داخل هم سی او ولی تا شرکت انگلیسی بهش گفت میشه دوستان تا یه حدی حالا دوستان درست گفتن دقت کنید چیف Executive Officer سی او میشه چیف اگزیکیوتیف آفیسر امدی یا منیجین director خب و پریزیدن هر شدها اینا به معنی مدیر عرشد یک سازمانه یعنی پیک یک سازمان هد یک سازمان مدیر عرشدی میخواد دیگه و نقش مدیر ارشد بله نظارت و فعالیت ها و فرایند ها در سطح سازمان مجری مسببات هیئت مدیره در سطح سازمان متوجه هستی؟ و مدیری هستی سازمانی ولی این سه تا از طرح لغبی با هم فرق بکنه Chief Executive Officer خب یعنی مدیرامه Managing Director یعنی مدیرامه خب President یعنی رئیس ولی یه فرقی وجود داره دقیق کنید بله، سی او در شرکت های آمریکایی ازش استفاده میشه یعنی در شرکت های آمریکایی مدیر بهش میگن سی ای او چی اکزیکیتیو افیسر خب بالاترین مقام اجرایی یک سازمان بهش میگن سی او خب در انگلستان و در زبان این بگولم الان بریتیش خب منیجینگ Director میگن یعنی مدیرامه باز بالاترین مقام اجرایی یک سازمان رو میشن مدیراله پرزیدنت فقط و فقط در شرکت‌های خدماتی استفاده میشه مخصوصا در دانشگاه‌ها پرزیدنت رئیس دانشگاه توجه می‌کنید رئیس یک آژانس رئیس یک مؤسسه ما در مؤسسات آموزشی در دانشگاه‌ها متوجهی مدیرامل نداریم خب پرزیدنتس داریم پرزیدنت یعنی رئیس ما دانشگاه و دانشگاه تهران و با اون همه با قول معلوم عرض و طولی که داره نمیگیم مدیرامه دانشگاه تهران میگیم رئیس دانشگاه تهران که اگر بخواهیم ترجمهش کنم چه President of university of تهران university همه ما آموزشی مدیرامه بی‌نعنیه رئیس موسسه از که میشه President ولی از نظر شرح وظایف و از نظر انتظاری که میره پرزیدنت همون کار سی او رو و منیجینگ دایرکتور رو انجام بده اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم سی او و منیجینگ دایرکتور اپلیکیبله یعنی قابل استفاده و قابل کاربرد در کوپریت در شرکت های تولیدی و صنعتی متوجه هستی پرزیدنت در مؤسسات بیشتر خدماتی آموزشی در حقیقت کاربوردی اپلیکیبله جانم گفتم که مدیر نه اشتباه خود. شرکت نداریم. اصلا, اصلاً براساس قانون ثبت شرکت ها ما اگر مؤسسه آموزشی باشه مدیر عامل نیست. معمولا رئیس مؤسسه مدیره ما جان شرکت مثلا واردات صادرات استفاده میشه. نه نه واردات صادرات هم میشه کالات میشه. کوپریته. آره. باس CEO یا managing director فقط managing director رو بار دیگه ببنی؟ ببنی؟ یعنی مدیرامه. مثل CEO. CEO یعنی مدیر عامل، در انگلستان استفاده میشه، او در آمریکا استفاده میشه. می که که نه، منظور من از کوپری یعنی شرکت‌های تولیدی صنعتی شرکت هایی که در صنعت دارن فعالیت کنن برخلاف واردات صادرات ها در این سنعتی... صنعت بله بله یعنی دیگه صنعتی داره فعالیت میکنه دیگه درسته so, در ایران چی میگم چی رو I mean... در ایران مودرن میگن خب یعنی yani... من, من بیزینس کارت ها رو که مثلا میبینم ترجمه میکنه چون بیزینس کارت ها یه قسمت فارسی داره یه قسمت انگلیسی من خدمت شما گفتم که بدانید نسبت به اون آه آه در, در ایران هم منچین جی رکتور میتونه استفاده کنه هم سی او میتونه استفاده کنه چیف اکزیکیوتیو افیسر خب ولی یه داستانی که وجود داره در شرکت های تولیدی و صنعتی اگه مدیراملی عاملی ترجمهش نکن پرزیدنت غلطه پرزیدنت برای مؤسسات آموزشیه خدماتیه مثل دانشگاه ها مثل مؤسسات آموزشی خب حالا یه سوالی ازتون دارم سوال شما در چارت های سازمانی ایرانی ممکنه معاونت ببینی؟ درست میگم؟ مدیر ببینی؟ معاون ببینی؟ درست میگم نه؟ رئیس ببینی؟ خب؟ سرپرستم ببینید ببینی اینا این اصطراحاتی که ما در سازمان های ایرانی خیلی کامله، خیلی معموله، مرسومه داریم فرقه اینو با هم چیه؟ معاونت مدیر معاون رئیس سفر است. رئیس و تماما اون آموزشی دیگه. نه نه نه نه نه. نه. این دیگ رابطه نداره. نه، نه نه نه. نه،, نه. <تصفيق> فرقی که این لغات با هم میکنه در سازمان ها بحث میزان اتوریتی متوجه هستید؟ بحث میزان اتوریتی و در حقیقت موقعیت سازمانی، موقعیت سازمانی که دارم میگم یعنی اسپن آف کنترول، چه تعداد پرسنل زیر نظرشون هستن. خب، دقت بکنید. اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم، معاونت از اولویت بالا و شماره 1 برخور داره یعنی بعد از مدیر عامل، معاونت یک سازمانه که در حقیقت ما میگیم که اتوریتی بالایی داره یا اسپن آف کنترول بالایی داره یا حدوده مذرم میخوام اختیاراتش یا تعداد پرسنلی که دارن بهش گزارش بیدن زیاده اگه مرحله دو بخواییم بریم مرحله دو میشه مدیر معاملت بعدش مدیره که از آتوریتی پایینتری داره دست سازمان. اینا که من دارم میگن قانونها متوجه است حالا بعضی من اشتباه میکنه و یه داستان دیگه است خب بعد از معاونت، مذرم میخوام بعد از مدیر ما رئیس رو داری بعد از رئیس معاون داریم و بعد از معاون سرپرست رو داریم یعنی اگر بخوایم از نظر حدود اختیارات و موقعیت های سازمانی این پنج پوزیشن رو کتگرایز کنیم خب با <تصفح> باید بکنیم در سطح سازمان معاونت از رده بالاتری برخورداره بریم مثال بزنیم فرض و فرمایید شما یک مدیرامل داریم معلوم این پنج حالت رو میخواب در یک ساختار سازمانی ببینم خب یه مدیرامه داریم معاونت بازرگانی متوجه هستید؟ معاونت بازرگانی میتوانم تبدیل بشه به مدیر فروش خب مدیر فروش اوکی؟ مدیر فروش در ادامه رئیس واحد یک رئیس واحد دو و رئیس واحد سه مدیر فروش اکی هم میتونه ایک معابل می فروش خب؟ معامل فروش <تصفيق> و بعد زیر نظر رئیس واحد میتونه سرپرست باشه و بعد میتونه کارشناسان باشه دقت کردیم؟ ببین از مدیرانه رسیدیم به معاونت بازرگانی، زیرنظر معاونت بازرگانی مدیره خب، زیرنظر مدیر، رئیسه زیر رئیس زیرنظر رئیس، سرپرست، خود مدیر توی داشته باشه که این معاون بالاتر از رئیس قرار میگیره. دقت بکنید. اگر شما تو ساختار ساد سازمانی شرکت اون دو حالت دیدی یعنی ردهش از مدیر بالاتر باشه. یعنی اسف آف اوف بیشتری، یعنی تعداد پرسنل بیشتری داره بهش گزارش می‌کنه. و مدیر همیشه از رئیس بالاترها فکر نکنیم برعکسه ما میگیم مدیر تدارکات از رئیس تدارکات بیشتره این بخ... اینا خیلی مهمه هم من وقتی باید یه سازمان میشم یه نفر خودشو معرفی میکنه میگه من رئیس واحده اداری هستم میگم اوکی یه که خودشو معرفی میکنه میگه من مدیر اداری هستم این مدیره اون رئیسه بالاتره بله یه اصطلاح مدیریت مدیریت هم میارم، بعد از مدیریت همینه، مدیریت مدیریت مزرم یه یعنی مثال بزنیم از پتروشیمی چارت سازمانی پتروشیمی چون من خب با سنت نفت و گاز کار کارم، چارت سازمانی اینا دستمه بریم؟ پاک اینو؟ نه استاد که من یعنیم <تصفيق> نهرم و صدر نهرم دایما مؤمنه ناق بالاترین دیگه مؤاخالته درآمد و امور مشترکیم شده دفتر نظارت این قائدام مدیر دفتر دیگه مدیر مدیر و بعدش کارشناس ای اوکی خب چهارت سازمانی پادشگاه آبادان رو برایتان ترسیم میکنم اوکی؟ بله مدیراملی وجود دارد زیر نظر مدیر تولید. خب زیر نظر مدیر تولید رئیس تعمیرات رئیس مهندسی رئیس خدمات فنی <تصفح> یه قسمتش من دارم میکشم خب زیر نظر رئیس تعمیرات سرپرست، مذارب بخوام، من کشیدم این میشه یه جا پا. مدیر تعمیرات ببخشید همون رئیس تعمیرات رئیس تعمیرات رئیس خدمات فنی و رئیس مهندسی اوکی زی نظر رئیس تعمیرات سرپرست سرپرست آنه من دیگه نمیلویستم مثلا سرپرست پاس فرض ماشین ماشینالاته یا ماشینریه خب یا سرپرست ابزار دقیق مثلا به هم جوری این مدیر رئیس سرپرست متوجه شدید؟ که عملا آتوریتیش و اون سپن آف کنترلش باراتر از رئیسه و باراتر از سرپرست سوال، پالایشگاه آبادان پالایش نفت تولید بنزین تولید انبوه یا پروژه‌ایه؟ انبوه انبوه كل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پروژه‌ای نیست انبوهه. داره بله، یه محصول مشخصه که دارم تولید می‌کنه. حالا چه پالایشگاه، چه پتروشیمی‌ها سرپرس ماشین. ماشینری ماشینری، سرپرس ابزار دقیق خب، بریم ساختار سازمانی پتروشیمی رو بکشم پاک کنم اینو نه. صد معاونت نداشت دیگه خوبی. نه، دیگه مدیره دیگه معاونت دیگه نداره حتما که نمان اینو وجود داشته باشه که خب، بریم سرابه یه ساختار سازمانی دیگه داختر سازمانی پتروشیمی خراسان خب؟ یادداشت کنید یه دو داره زیمان رئیس کارخانه معامل کارخانه سرپرست تعمیرات سرپرست فنی سرپرست بحر برداری ببین رئیس زیر نظر سرپرست میاد درسته؟ و بعد معاون، زی نظر معاونت کی میاد؟ مدیر، زی نظر مدیر کی میاد؟ رئیس، زی نظر رئیس سرپرستی میاد. این در حقیقت کلاسیفیکیشنی که من بر تو انجام یک دو سه چهار پنج همین جلو برد کش. OK سوالی هست؟ اذا جان چه چیزی بوسه انتقال میشه مثلا به فرض مثال الان بگیم که اونجا مدیر اومده زیر وجوه شده رئیس کارخانه چه موقع این مدیرامل معابنت معاونت برای خودش بزره صار سوال هست حالا اون معاون کارخانه چرا نمیاد زیره یعنی روی سرپرستا نظارت نمیکنه چرا؟ دیگه همکاری میکنه با رئیس کارخانه یا به قول به قولی دیگه اسیستانت رئیس کارخانه جهت نظر رئیس سرپرستون یعنی رئیس کارخانه خودش مستقیم رو سرپرستان میتونه نظارت هم بکنه آره خب من تا وصول شما رو میدم یه سوال و این سوالم یه بسیار مهم معاملت بازرگانی تمره تمرکز کنید 5 دقیقه فرق این مدیر با این معاونت در چیه جفتشون هم دارن با مدیر عامل کار میکنن متوجسی دارن جفتشون با مدیر عامل دارن کار میکنن دیگه مدیر مالی با مدیر کار میکنه معاونت بازرگانی هم داره با مدیر عامل کار میکنه چرا ما برای بازرگانی باشیم معاونت چرا برای مالی باشیم مدیر سال اول خب سوال دو سمت سازمانی کدومشون بهتره جفته شو هم با مدیر کار میکنن فتشه رو ما برای مالی گذاشیم مدیر برای بازرگانی گوشیم معابلت مثلا ما این ما معابلت مالی داریم میتونه داشته باشه. میتونه باشیم تو این شاپ به من بگی سمتی این بارو یه سمت هم یه دوسته دیگه دو تمرکز کنیم افرادشم، شما فکر میکنم باشه مدیر مالی... مدیر حساسیت دیگرانه دینا، حساسیتی کار بشه باید مالی ارتباطه ولی مدیر مالی هم شرطه است چون مدیر مالی, مالی هستید یه شکست با رو صاز... <تصفح> مالی گونه از شایده پر رجیه کنترل کردنش, کردنش. اون نظارت کردنش جایگاه بیشتری کجا کی؟ من نظرم گفتم به دوستان خب بگید من به نظرم نیسته که معاونت ها بالاتر هستن از مدیر. به واسطه اینکه که نه هجم... معاونت که از مدیر بالاتر هست من اونجا نوشتم بله. ولی در این چارت به خصوص خب آ... کدومشون بالاتر؟ این پلان به نظر من مدیر مالی حالا نمیدونم مالی چرا مالی. چون به هر چیزی،, چیزی که من دارم و من مدیر مالی رو با معاونت بازرگانی میخوام مقایسه کنم این چارت سازمانی خب؟ خوب کدومشون سمتشون تو سازمان بالاتر؟ تو چارت بعد مدیریت مالی بعد نظارت رو نه حیدد بزنید نکته شماره یک. نکته شماره یک شرطی که به این صورت کشیده شده خب که شما مدیر مالی رو در کنار دارید و این پای معابنت بازرگانی رو دارید فکر نکاره که مدیر مالی بالاتر است از معابنت بازرگانی این پوزی حاله من دلیرم میگم من چرا, مدیر... چرا من مدیر مالی را پایین نکشیدم چرا اصلا مدیر مالی رو معابنت مالی نذاشتم اونا دلیل داره خب در این شرط سازمانی به خصوص هیچ. تفاوتی بین مدیر مالی و معاونت بازرگانی از نظر رده سازمانی نمی کنه. رنجشتشون در یک رده سازمانی هستن. خب تو این شا. تو آره دیگه هیچ تفاوتی بین این مدیر مالی و این معاونت بازرگانی نمی کنه. جفتشون در یک رده. خب ولی چرا من گذاشتم مدیر برای مالی؟ چرا برای بازرگانی گذاشتم معاونت؟ تعداد زیاد یک تعداد افراد یک تعداد افراد متوجه منظور من هستید یک تعداد افراد یعنی قاعدتا اسپن آف کنترول یا اسقصی معاونت بازنگلی از مدیر مالی بالاتر قاعدتا که یه امجه اتفاقی دو دلیل دو قوم ما به تحفیز اختیار بالاتری را می‌کنیم تا به مدیریت. خب، تحفیز اختیار بالاتری را می‌کنیم به معاونت اینجا من به مدیر مالی نخواستم تحفیز اختیار کنم به بازده مالی. گذاشتم مدیر، توجه می‌کنی. و اینجا برای بازرگانی من تحفیز اختیار بالاتری را انجام دادم. دیلیگیشن بالاتر را انجام دادم و خب؟ یه سوال یک سوال پس تفویز اختیار دلیگیشن اینجا برای بله بازرگانی بیشتر است از مالی اینجا مدرامل میخواه مالی یک نظارت مستقیم داشته باشه رو با بازرگانی این نظارت کم تره تفیز اختیار بیشتر سوال داره دینا؟ نه سوال. مو این چه رفتی داره به مسلسه استراتیجی؟ آسا درسیدیم به اینجایی که مسلسل مسلسه مونده بود خب. مسلسه از دو جلسه پیش مونده بود بفتیم شاید منم اینو میخواه کنم شاید <تصفيق> نه بابا رفتی <رب> نداره <تصفح> آقا شرکت X شرکت Y این دو تا فرش مارم میشه اصلا ساختار سازمانی شرکت ایکس وارد بازرگانی داره وارد مالی داره اینجا داره مدیر بازرگانی اینجا داره مدیر مالی اینجا وای معاونت مالی داره معاونت بازرگانی فرقی نداره دو شرکت ما همش در یک نگاه اسپرسسی شرکت وای خیلی بیشتر است از...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 شرکت X شرکت ها یه X درسته؟ باید. یه در شرکت Y بیشتره بگیه درست یا نه؟ در شرکت X اشتاو نشتن. اشتاو نشتن. در شرکت X کمتره در شرکت باید. درسته؟, باید. درسته؟ باید. دو تفویز اختیار من انگلیسی شو بینیمسم تفویز اختیار میشه delegation تفویز اختیار تو کدومش بیشتره تو کدومش کمتره توشوه های بیشتره توشوه های بیشتره ها؟ توشوه های بیشتره تفریز اختیار در وای بیشتر در ایس این تا طلاحاتی عادش کنید centralization decentralization centralization یعنی متمرکز decentralization یعنی غیر متمرکز برید. centralization یعنی متمرکز decentralization یعنی غیر متمرکز OK مای کانسپتی در ساختار سازمانی داریم به نام متمرکز و غیر متمرکز زمانی که تفیض اختیار مدیر بالادستی به پایین دستی نکند یعنی سازمان میخواد متمرکز کنترل کنه و زمانی که مدیر بالادستی به مدیر پایین دستیش تفویض اختیار بکند یعنی سازمانشو رو به قول میگن ریموت کنترلی غیر متمرکز میخواد کنترل کنه دیسنترالایز میخواد کنترل بکنه خب؟ در X، در X ما سنترالیزه شدن داریم. نه. یعنی متمرکز. در Y دیسنترالیزه شدن داریم. اوه یه واییمیش چه میشه؟, چه؟ توی چه میشه؟ یعنی چی؟ توی میشه اشرافی چی؟ مطمئن که نه شما فقط نظارت داری رو کارشون ولی این ها تففیز کردیم مثلا چی؟ تففیز اختیارم مدیر مالی اخراج استخدام به خودت. بس. متوجه هستی؟ برنامه‌ریزی بودی خودت تو فقط من خودم با این اهداف برسم. حالا تو کجا کار می‌کنی؟ از ای تا ز بودی خودت. ولی در تئوری اگه شما سم مدیر عامل نرسن برای مدیر مالی کارشناس استخدام می‌کنه و در اختیارش میذاره. می‌دونی چی دارم میگم؟ میاد با مدیر مالی چه واسه میشه برنامه ریزی رو تدوین میکنه خب ترفیض اختیار پایین‌تر. استاد پس شرکت ایگر بهتره. آ دکته بعدی کدومش فلاته کدومش تاله X X فلات Y organic نه X درست ولی Y organic فلات تر کجا فلات تره یا X فلات من نظرم ها آه کدومش فلاپ من نظرم که ایکس فلاپ چون کارها بر میگردید به مدیر آنویل بر میگردید آه من تحفیز اختیار رو در کدوم بالا؟ در وای بردم بالا؟ اسپن آف کنترول در کدوم بیشتره؟ در وای بیشتره؟ پس ارگانیکه وای شما ارگانیکه درست یا نه؟ ها پس وای ارگانیکه ها و با و, و ایکس مکانیکه درسته آه. یعنی چی یعنی این فلات باقی تاله وقتی شد داستان چی شد؟ اون تو ایکس من روزم کجاش؟ کجاش متوجه نشدی؟ نکرده شد ببینیم مگر ما جلسه گذشته صحبت از ساختار فلات و ساختار پار نکردیم تبینیانم خب ساختار فلات یعنی چی؟ یعنی این که تعداد پرسونل بیشتری به مدیر و بالدستی گزارش میدن خب؟ یعنی تقفیز اختیار باراتره با تنجه هستی؟ انعاد در این ساختار X و Y تعداد پرسنل بیشتری هست که به مدیر آمه دارن گزارش میتوست ساختار فلتر میشه دیگه یعنی یعنیش هم اینجوری باشه اصلا. شو خیلی میکنی کجا بیشتر بیشتر نیست اینجا که اینجا بیشتر نیست، اینجا کنار <تصفيق> این، <متحدث> در ما محدود کردیم، مدیر مالیمون محدود کردیم، حوزه مالیمون بازرگانیمون محدود آره، اینجا محدود بله. کنارش میادیم. بریم. ساختار فلات یعنی اینکه شما بفهمزه. بله. این مثلثه دیگه. درسته؟ یا ها؟ شما هم این ضلعش بزرگه دیگه. درسته؟ یعنی این مدیر بالادستی ریخته اون اون کرده به لا لا پایین‌تر این ساختار فلت‌تر داره میشه من فلسفه‌شو دارم میگم ام. یعنی غیر متمرکز دیسنترالایز ولی وقتی می روی در حقیقت این ساختار می‌شینه خب این مدیر می‌خواد بدونه ای این مسئولیت‌ها بیشتر در اختیار خودش داشته باشه مثلث من دارم از این مثلث به جای که فلت‌تر بشه هی تال‌تر داره میشه بولان چادر داره میشه هی مودین میخواد خودش داشته باشه میگه کمتر تفریز میکنه به پایین تر متوجه شدید؟ این فرآیند نمیشه گیره. لا، نه هورای این, این فلاتنس. نه نه این این بیشتر ساعت قاعده خیلی بیشتر, بیشتر بزرگتر میشه قاعده. آره اینو شامل بازار طبیعی اون قاعدهش بزرگتر, قاعدهش, بزرگتر قاعدهش بزرگتر میشه. این قاعدهش بزرگتر میشه. آره این قاعدهش میشه چون برای کارش. نیدو. نیدو. ببین ما بحث فلات و تال یعنی چی من یه جوری فلات زمانی است که مدیر تفیز میکنه خب و فلات زمانی است که مدیر غیر متمرکز سازمان شد مدیری مدیریت تفویض اختیار میکنه غیر متمرکز ولی متمرکز ساختار تال ساختاری که توش بیوروکراسی بالاست مدیر تفویض نمیکنه مدیر میخواد همیشه رو خودش انجام بده چون رو میخواد خودش انجام بده اما هنی ساختار هی بلندتر میشه میدونی لایه های تصمیمگیری افزایش پیدا میکنه ببین، الان چند لایه تصمیمگیری شما داری؟ جواب من رو بده دوتون یه دوتون توی این توزه یه مای نه، چند تا لایه تصمیمگیری؟ اما رو ما برم چند ولی اینجا چند لایه؟ دو لایه یه مدیره و مدیرامله با این دو لایه بر برای تصمیم دیگه عملت این تالتره دیگه گرفتید؟ شما؟ کلیر؟ سوالی هست؟ خب ما بحث صافتار سازمانون ادامه بدیم ادامه بدن؟ ادامه وقتی تصمیم مدیرامله من تو تصمیم بودی نبود که نمیکنه ولی دیگه تفویض کرده به من. من خودم سیستم خودم مثلا معابت دارم. من کار با تعداد پرسنلیش ندارم. مثلا معابت بازرگانی 6 تا بخوا داشته باشن، در تا داشته باشن، یه نظری من میدادم کانفرمیشنی من میدم. چرا من برای ترتیب بودجه مشخص کردم؟ و ترتیب بودجه خاصه برای اساس اون بده. حالا میخواد با 10 نفر به اون هدف برسه، میخواد با دو نفر برسه. مثلا جای قیمت گذاری مثلا واردش نمیشم. خود معابت میبندم. چه اگه مثلا مقصولی که میخواد بفرشه با چه قیمتی بفرشه چقدر صدوش ببینه نبینه توی بازار با چه استراتژی بره جلو توی بازار با چه استراتژی جلو نره متنجه هستی راجوشرت دیگه روکرد سوم روکرد نوین. اصلا ماتریسی پروژه ماتریسی گروهی من میده خب روکرد نوین روکرد سوم از بحث ساختار سازمانی روکرد نوین روی کپ نوبین، نوین تیمی شبکه و غیر و ما سه نوع امنیت داشته، ما سه نوع تیم در سطح سازمان هم می داشته باشیم، سه نوع تیم, تیم در سطح سازمان هم می داشته باشیم، سه نوع تیم، خب، یه ادامه بکنی، یا تیم های شما CFD می تونه باشه، Cross Functional Team، تیم های چند تخصصی. یا تیمهاتون در سطح سازمان افتی میتونه باشه فانشنال تیم تیمهای عملیاتی یا جلس تیمهاتون میتونه ویتی باشه ویرچوال تیم یا تیم مجازی تیم های مجازی تیم چه کراس فنکشنال، تیم چه با ویژوال، تیم چه. دقت کنید. ساختار سازمانی خب کراس فانشنال تیم یا های چند تخصصی زمانی که افراد در یک تیم فعالیت دورن برای رسیدن به یک خدم و این افراد از نظر سمت سازمانی یا رده سازمانی در یک سطح باشن این تیم رو بهش میگن کراس فانشنال تیم یا تیمهای چند تخصصی مثلا یه تیمی تشکیل میشه که مدیر تولید با مدیر مالی همون میشه متوجه هستید این تیم بهش می‌گیم تیم CFT یا کراس فانکشنال تیم خب یه زمانی که افراد در یک تیم شرکت میکنن برای رسیدن به یک هدف و این افراد از یک ردیه سازمانی هستند اون تیم میشه کراس فانکشنال تیم یا سی اف خب حالا در مقابل تیم‌های چند تخصصی ما تیم‌های عملیاتی هم داریم تیم‌های عملیات تیم‌هایی است که افراد از رده‌های مختلف سازمانی با هم هماهنگ شده جهت رسیدن به یک هدف از رده‌های مختلف سازمانی با هم هماهنگ شده جهت رسیدن به یک هدف مثلا فرض بفرمایید در یک تیم مدیران مدیر مالی و کارشناس حسابداری در یک تیم در حقیقت همکاری و هماهنگی را انجام میدن جهت رسیدن به یک هدف درسته؟ درست میگم؟ این بهش میگن اف تی یا فانکشنال تیم. هدف یکی ردی سازمان تفاوله. بله بله بله. هدف یکی ولی رداء سازمان متفاوته. شاجره لفتمان بیارم میگه؟ من؟ چرا؟ شاید شاید سرحالم آره ها شارجه رفتم خب جلسه جلسه آخره تنگ می‌شه آره پس ما در سازمان کراس فانشنال تیم داریم فانشنال تیم داریم که کراس فانشنال تیم تیم های چند تخصصیه تیم است که از رده های مختلف سازمانی برای از, ر... از یک رده سازمانی در یک تیم فعالیت میکنن برای رسیدن به یک هدف خاص فانشنال تیم تیم های عملیاتی هستند. که در حقیقت در این تیم‌های عملیاتی های مختلف مثلا مثلا مدیر عامل مدیر مالی کارشناس داریم با هم هم‌آنجی میشن همکاری میکنند جهت رسیدن به یک هدف نکته خب مدیر یک آره دیگه آره دیگه مدیرش نظر سمتی نه یکی از مدیر مالی مدیر تولید در یک سازمانی هستا. هنگی این چون معاونت آره اون فرق می کرد بگید در, در, در, در یک ردیه سازمانی هستن اوکی؟ خب مثال سی افتی رو می برای من بزنید یکی دو تا تیم سی افتی که در سازمان می تشکیل باشه cross-functional team مثال بزنید چه کاری در سازمان می انجام بشه در قالب سی افتی در قالب cross-functional team مثال بزنید برای من مثال اینکه نه من سی افتی رو دارم میگم مدیر مادی، مدیر میاد به مدیر طولیب که این با هم حدفشون یکی آقا، تیم مدیر تحقیق و توصیب نه، توی این قالب صحبت کنیم مدیر طولیب مدیر مادی داریم دیگه توی این قالب صحبت کنیم خب، تیم بوجه بندی بودجه بندی. تا بودجه سازمان می تعریف بکنه مدیر تولید با مدیر مالی میاد سیون میشه همکاری میکنن تا بودجه رو برای سازمان تعریف بکنه اینو یک مثال از cross فانکشنال تیم خوب یا CFT اف تی تیم عملیاتی یه مثال ازش بزنیم برای سن. مدیر آمه، مدیر تولید، سرپرست تولید میاند خواهد که یه محصول تولید بکنن یه محصول توی یه رده قرار میگرم ها دیگه مثلا بزارش سایی را نه درسته آره. نه؟ ها؟ درسته؟ مدیر مدیر مثلا مدیر آمه، مدیر تولید و سرپرست تولید تو یه تیم قرار بگه خوش بشکتی یه مثال بزنید، بله تیم توسعی کالا درسته؟ کالای جدید میخواد ارائه بشه آه. تیم کاهش حزینه کاهش حزینه های درسته؟ سالی هست؟ ولی با سال الان اه. وقتی که این اف تولی، یعنی تشکیل میشه رنکینگ ها فرق میکنه یا همون میمونه یعنی چه یعنی مثلا مدیر جایگاه خودشو داره تو اون تیم یا دواره؟ نه نه جایگاه دیگه, دیگه. اینجوری نیست آه. که تو یه تیم کم میاد، مثلا مدیر عامل من مدیر نه،, نه نه جایگاه یکسانه جایگاه کاملا یکسانه درست اوکی نه. پس ببینید ما در ساختارهای سازمانی نوین باید اف CFT و FT رو داشته باشیم متوجه هستیم و این نگرش رو در قالب های مختلف در سطح سازمان تعریف بکنیم مثل تیم گوجه بندی مثل تیم کارش از اینهای تولید و غیر بزالک اوکی؟ یه تیمی هم داریم به نام های مجازی یا وی تی یا ویرچوال تیم ببینید گایی ارتباطات بین افراد در یک سازمان ارتباطات بین واحد ها در یک سازمان که در قالب تیم میخواد انجام بشه از طریق یک تکنولوژیه خب؟ یا این تکنولوژی رو ما می‌تونیم بشم بگیم اینترانت اکسترانت اینترنت اسکایب نمیدونم موارد مختلفی که هست که این ارتباطات بخواد در حقیقت تعریف بشه هر گونه ارتباطی بین افراد یا بین واحد ها که از طریق تکنولوژی انجام میشه مثل اینترنت، مثل اینترانت، مثل اکسترانت، مثل اسکای، مثل هم تو وایبر، متوجه هستی؟ این ارتباطاتو بهش میگم ویرچوال تیم یا تیم های مجازی این همارا یه طریقه اضافه تره گفتم بهتون بگم و در هر صورت، در ترکیب نوین در رابطه با ساختار سازمانی، ما نگلش نیاز تیم رو بعد داشته باشیم. تیم سازی رو باید داشته باشیم. حالا یه در قالب کراس فانکشنال تیم یا فانکشنال تیم یا در قالب بی تی اوکی، ادامه بدی؟ اینا سازمان روش مدیریت می‌کنه خب، پس ببینید روی کارت‌های سازمانی یا سنتی کلاسیکه یا پروژه‌ای یا مطمئنشه داستان ها؟ خب بله بخشبندی بر مبنام وزیفه ای باست چند تا مثال که اینجا اومده بخشبندی پروژه اینجا ببینیم مثلا مآمنت کنترل کیفیت مآمنت پشتیبانی مآمنت ساخت و تولید مآمنت تراحی مهندسی و الان داریم میبینیم مدیر پروژه ساخت زیر دریایی زد مدیر پروژه ساخت هواپیما پیما و مدیر پروژه مثلا ساخت موشک شرکت هایی که زیر نظر وزارت دفاع هستن معمولا ساختارشون ساختار پروژه باشه تیمی ما در این ساختار سازمانی مدیر داریم مدیر تولید فروش مدیر برنامه مدیر بخش مهندسی این ساختار چیه ساختاره وظیفه‌ای ولی میاد تیم مختلف در سطح سازمان تعریف می کنیم تیم یا اجنس سی یا اجنس افتیه متوجه هستیم مثل تیم کاهش حزینه ها مثل مثلا تیم بودجه ملی و نفرات هم در این تیم ها تعیین می کنیم و تربیم. خب ما در ساختار سازمانی استراکچرین دنبال کواردینیشن یا هماهنگی هستیم فرایل که یا تمامی بخش های تشکیل دهنده سازمان برای کسب هدف مشترک ترکیب ها مرتبط میشن ساختار سازمانی یا استراکچری مرتبطی خروجی که داره کواردینیشن یعنی هماهنگی بین افراد مختلف و دپارتمان ها در سطح سازمان اوکی؟ برای بله همه با مجموعه از مکانیسم‌های های ساختاری و رفتاری تحقیق میابد همه هایی میانیم این روهای طرف داره همه و ترکیب اینتگریشن و میره تفکیب تفکیه یا تنش وجود دارد داستان این چیه فنی ساختار متوجه هستید مونتری خروجی که داره چیه کوردینیشن یا هماهنگی کوردینیشن هماهنگی یا ایجاد هماهنگی آره دیگه ایجاد هماهنگی یا هماهنگی ها خب؟ نیروها در ساخت سازمان دوستان به دو گروه تقسیم میشن نیروهایی که differentiation نیروهایی که integration کلا در هر سازمانی نیروها به دو گروه تقسیم میشن نیروهایی که طرفدار هماهنگی بین واحدهای های مختلف هستن و به قول معلوم از نگرش تیمسازی میخواه به هدفشون برسن این نیروها رو ما بهشون میگیم نیروهای integration نیروهای طرفدار هماهنگی خب؟ یعنی به ساختار سازمانی مختلص کلام احترام میذارن ساختار سازمانی برایشون مهمه میدونی؟ یعنی هماهنگی بین واحدها رو اهمیت میدن. خب؟ در جمعیت بالای بشمیدن برایشون مهمه و گروه دوبام از نیروها نیروهای طرفدار تفکیک یا دیفریشیشن ببینید بعضی از دینوها طرف هماهنگی همه هنگی در سطح سازمانند ارتباطات بین فرآیندی براشون مهمه بعضی از اینها دوست دارن سازه خاص خودشون رو بزنند و هر جفت گروه ها تا گروه ها تأثیر مستقیم روی کوردینیشن دارن روی صاختار درست سازمانی دارن کدومش بهتر برای سازمان؟ تفریق چرا تفریق شما میگه؟ چون معقول وزیبه‌شون مشخصه چون با وزیبه‌شون مفتوری که بود حالا چریعتی که می‌خواه ازشون می‌خواهی انجام بود این یعنی چی؟ این روهای طرف داره یعنی نمی‌خوان همه با صاختار سازمانی آ نه, نه اینو ما منظورم از کدوم تاثیر رو هماهنگی میذاره اون بالای تافتار هماهنگی ببین ببین شکنی است دارید اول ما میگیم اینتگریشن خوبه تاثیر رو هماهنگی میذاره درستم هم هست ولی ما نیازمند اینم هست چرا من دولت ما اول اول دولت ها نظر مخالفشون سازنده است وظیفه برنامه گروهی ما می‌دینه بعد چی کار انجام بده ما نیازمند گروه‌های دیفرنسیییشن هم هستیم نیروهایی که به نوعی طرفدار تفتی کرد نیروهایی که تضاد تو سازمان ایجاد می‌کنند این این این به قول رو به قول چینی ها میگن باعث تفرقه بندازه مدیریت بکن ما نیازمند این گروه از نیروها هستیم چون این گروه از نیروها نظرات مخالف داره و این نظرات مخالف در سازمان خودش باعث خلاقیت در سازمان میشه من اگر بخوام در یک نمودار نشون بدم اگر این محلفه رو بذارم راندمان خب و این محلفه رو بذارم دیفرنشیشن متوجه استید؟ differentiation در سطح سازمان باید وجود داشته باشه اوکی؟ باید وجود داشته باشه اگر وجود در دا داشته باشه راندمان در سطح سازمان میاد پایین اگر بیش از اندازه وجود داشته باشه باز راندمان در سطح سازمان میاد پایین ما میگیم differentiation در یک حد نرمال برای سازمان خوبه، می‌دونی چی در یک حد نرمال باعث افزایش راندمان یعنی شما هر اکثر راندمان رو در سطح سازمان خواهید داشت. 5 این درستات افراد جمعه رو دقیقاً. از اون طرف داستان اگه بخویم در یک نمودار دیگه دوباره نمایش بدیم من یکی رو اگه بذارم بزنم راندمان یکی رو مثلا اینتگریشن نصات اینتگریشن بیش از اندازم در سطح سازمان باعث کاهش راندمان میشه اینتگریشن کم باعث کاهش راندمان میشه ما اینتگریشن رو در یک سطح نرمال برای سازمان دوست داریم چند درصد در اونجا ما 5 درصد 5 درصد تا 5 درصد 95 درصد میگه در حد نرمال باید باشه آراسته. بص. آراسته. چرا چرا همراهتین چه گلیش نموشن؟ اول تو سازمان از بین میره. ببین همه فرض کن از یه جنسن. متوجه هستی؟ همه برون ریزن. همه درون ریزن. همه خیلی خوب دارن کار میکنن ولی ما بالاخره یکی دو نفرم میخرن که بد کار بکنن تو نقاط ضعفمون. چون خود نقطه ضعف بازار مدیر رو آگاه می‌کنه که باعث به دوباره یک سری تغییرات میدونی چی میخوام بگم سازمانی سازمان موفقگی که دینامیک باشه روبه طور حرکت بکنه سازمانی میتونه روبه جل حرکت بکنه که به قول معروف نقطه ضعف داشته باشه توجه بکنید با نقطه ضعف خودش باعث حرکت در سطح سازمان میشه یعنی مدیر میفهمه یه جایه که مشکل داره ذهن مدیرو به کار میندازه من می سراغ تاکیدش تغییرات <تفقیق> ما میگیم بریم در صد نذاریم ما میگیم تمایز یا تفکیک کمش بده زیادش هم بده در یه سطح نرمال بله 90 درصدش حد نرماله 90 تا 95 درصد یعنی لين درصد نیروها توجه می‌کنی باید طرفدار اینتگریشن و ده درستان طرفدار دیفرنشیشن باشه اینه حد در مهمان اوکه؟ سوال هست؟ نه, نه، آن تراک ارموز ندادیم چرا مستم؟ اصلا یک کله میخواهم یه کنیم برم الان دار الان میره که آنچار حال من خوب نیست میخواهی که کلیم تو ببینم تو یا من کم میانم آره تو مشخص میشه دیگه بریم بزن آخرم بگم و نتیجه گیری ما در ساختار سازمانی من از بالا بیا پایین و دونه دونه یک دنبال کاهش سلسله مراتب یعنی چی سلسله مراتب پاش پیدا میکنه یک بیوروکراسی به پایین دیگه آوا سلسله مراتب میاد پایین یعنی چی عدم یعنی میشه یعنی سنت آدم تمام تمرکز غیر متمرکز یعنی ساختار ارگانیک بشه یعنی ساختار مستهتر بشه یعنی یعنی چی؟ یعنی جا امپاورمنت در سطح سازمان یا طوالمند سازی شوق در سطح سازمان برو بالا ما دنبال کاهش وحدت فرماندهی هستیم کاهش وحدت فرماندهی یعنی شی؟ نه کوشش بحتت فرمانده یعنی که ها سنترالایزیشن رو در سازمان بیاریم پایین و کنیم سازمان تا حد امکان به صورت غیر متمرکز جلو <تصفيق> یعنی سنترالایز بره جلو بله گسترش هیته کنترل و نظارت شما در سازمان همیشه باید دنبال اسپن آف کنترل باشید اسوسی باشید آخه تو باید شودی. همیشه واقعا مولع یعنی باید اسپت، این چنده؟ چندت؟ اینو با گفتن گفتم پر نه بابا؟ یعنی یک نفر چند تا نیرو رو بازی نظرش رو باشه؟ بشه. در. شیش. آن. هر کیه. هر وقتی میگم نسبت اسوسی، یعنی در سطح سازمان. شما با توجه به تعداد نیرو نیروهایی که داره چند تا مدیر رو داشته باشید سازمانی صد نفر نیروه انسانی شه. صد نفر، یک به ده یه مذہب یک به نه ده درصدش باید مدیر باشن و درصدش باید کارگر و کارمند و کارشناس و اینا باشن. یعنی اولا ما نسبت یک به نه رو میریم یه خیلی بدبینانه بخوایی به قضیه دگاه کنیم بیس داده. خیلی بدبینانه یا یه شرکت که مدیر زیاد داشته باشه آفرین. تعداد مدیران وقتی در سازمان بره بالا یعنی گسترش حیطه کنترل و نظارت داره در سطح سازمان کاهش پیدا شده بسید کاهش بعد بس فرماندری یه بار دیگر دیگر اینه من یه سال یه هفته پیش مطرح کرده بودم درسته؟ دان سایز و راید سایز درسته؟ فرق دان سایز و راید سایز چیه؟ بعد به فرخنده نشد. شامل کنسول زن کوچک کردن سازمان یه سری ان، انجام داد، کردن فعالیتایی که نیاز نیست، اشیاء کردن افرادی که نیاز نیستن، مثلا کارش ها، سایتن یا تغییر ندادن یا بزرگ کردن. یه تغییر روی دیگه دانس‌ساز کارش نیروی کاره در بی در عینی بیرونی مثل کسالی باطل. آفرین. ولی راید سایز تغییر نیروی کار به داخلی داخلیه مثل تماس استراتژی سازمان. آفرین. یعنی فقط کارمنده‌هاشون. اینه اینه درست چیه؟ یعنی فقط کارمنده‌ها مفید هستند برای کار دارن ما. دقیق بگو. یه زمانی ببین دانس‌سایز و رایت سایز جفتش به معنیه به معنیه جفتش. به معنی اخراج و کاهش نیروی انسانیه خب، جبتش شما چه رایت سایز بکنید؟ چه دان سایز بکنید؟ در نهایت داری این تعداد نیرو رو از سازمان اخراج بکنید؟ یه فرق هم داره یه موقع از بازار کساده به دلیل عوامل محیط بیرونی، مثل عوامل اقتصاد سیاسی، تکنولوژیکی، فرهنگی شما مجبور میشی محصولات تو فروشش رو بیاری پایین تولیداتو کاهش بدی متوجهی و در ادامه بیای نسبت اخراج یک تعداد از نیوان اخدام بکنی اتفاقی که در یازده سپتامبر دویزار یازده افتادن برجای دوغنیو در نیویورک امفجر شدن خیلی از شرکت های هواپیمایی با یک جکود بچهدناکی رو درون شدن شرا تو خیلی ها از پرواز استفاده بکنن و اینو مجبور شدن نسبت به اخراج یک تعداد زیادی از پرسونل و نیروی انسانیش رو در سازمانشون اخداف بکنن نمیدونم در اون مقتم اگه اشتباه نکنم نه هزار نفر ده هزار نفر از شرکت هواپیمای بیکار شدن اینو بهش سایزینگ یعنی به دلیل مشکلاتی که شما در تولید فروش و این مشکلات برمی گرده به محیط بیرونی سازمانت دارین باید نسبت اخراج یک تدیار از افراد اقدام بکنی اینو رو بهش دان سایز ها مطمئنه چه داستان چیه؟ من این رایت چیه؟ رایت سایز چیه؟ من دو سال پیش ساختار سازمانم اینجوری بود معاملت فروش داشتم که دوتا باید زی نظرش کار میکرد دوتا واحد یه معابلت داشتم معابلت قراردات ها که یه کارشنا زی نظرش کار میکرد مشکلی که این داره چیه؟ اسپن کنترلش کنترولش کمه دیگه درست نه؟ ما میگیم که همیشه باید گسترش هیته کنترل و نظارت داشته باشیم گسترش هیته کنترل و نظارت یک دیدیه که حتما مدیر باید داشته باشه آقا چند نفر زیر نظری یک نفر دارن در حال حاضر کار میکنن یکی مدیر همیشه باید دنباره افضایش اسوسی باشه اسپن آف کنترل باشه دقت کنید ما اومدین گفتم آقا زیر نظر این معاونت یک کارشناس داره کار میکنه خب این مدیرم آماده بود یعنی چا امپاورمنتشو بردیم بالا این واحد رو حس کردیم انتقالش دادیم به این واحد یعنی مرجش کردیم متوجه هستید این آقا شد معاملات بازرگانی خب و کارشناس ایشون هم رفت زیر نظر ایشون کار کرد چه اتفاق افتاد این آقا رفت سراغ باقالی‌ها یعنی اولا چیز شدی که اخراج شد حالا اینو ما بهش میگیم رایت right سایزینگ یعنی یه موقع هست شما نفری رو در سازمان اخراج می‌کنی چاپ میکنید نه به خاطر اینکه فعالیتات کم شده یا بیزینس ات کوچیک شده به خاطر بهینه کردن کار به خاطر اینکه میخوای راندمان رو در سطح سازمانت بالا ببرید به خاطر اینکه دقت کنید دقت کنید دقت کنید کنی. به خاطر اینکه میخوای اس رو در سطح سازمانت ببری بالا اسپاد او کنترل رو در سطح سازمانت ببری بالا اس رو ببری بالا اصل مورد اول چی شد هیچی کار ایشون انتقال پیدا کرد این برد یعنی دو تا باهه با هم مرد شدن مرد. یکی شدن این نفر نفت مطمئن شده دستانو؟ سوالی هست؟ مرد. همیشه، دوستان یک، کاهش سلسل مراتب با منی یعنی سازمانت ارگانیک بکن ساختارت رو مستطب بکن کاهش وحدت فرمانده ای یعنی سعی کن تفیز اختیار در سطح سازمانت ببری بالا کاهش وحدت فرمانده ای تفیز اختیار ببری یعنی سعی کن مسئولیت هایی که خودت داری بومونی یک فرمانده دارید بیرال میکنی تفیز کنید به گسترش هیتل کنترل و نظارتی یعنی SOC و افزایش تفیض اختیار و ثبتن منسازی کارکنان، ثبتن منسازی کارکنان. این روش تفیض اختیاری که ما توی کارش کردیم دیوونی. خود از چه شده دیگه؟ و, و بعد ثبتن منسازی کارکنان الان چی؟ مم. یعنی job empowerment. درسته سطح سازمان ببر بالا و این جمله آخر خیلی قشنگه جمله آخر رو بخونیم شما به عنوان مدیر دیسنترالایزشن رو ببر بالا تفویز بکن کاری که من تو سازمانم انجام دارم تفویز اختیار کردم سازمان رو دارم به صورت دیسنترالایز کنترل میکنم کنترل غیر متمرکز دارم ولی حواس هم هم به کار هست اینا چی دارم بهت میگن حواسمون قشنگ به کار است یعنی طرف صبح چه ساعت دقیقا سره کار میدونه چی کار داره میکنه من میدونم تصمیمی که گرفته تصمیم بی خود گرفته نگرفته از شرکت داره دوستی میکنه می کنه بعضی نمیدونه با؟ این نیاز بود اینو یعنی شلغا کنترل غیر متمرکز همراه با آدم یعنی چرا با به کار باشه اگر کنترل غیر متمرکزه میری چون دیگه نمیتونه تفتیز که خدا حفظ دیگه من کاری ندارم، نه مدیر باید حواسط همه چیز تو سازمان باشه نازمان دیگه واحد نظارت نیست نه اطلاعات کراس functional check گریم cross ببین من بحثی که دارم تو سازمانم تفیز اختیار کردم، اوکی ولی یه قانون گذاشته گفتن تمام ایمیل هایی که رد و بدر میشه بین واحد من تو سیسی باشه یعنی عملای من روند کارو رو دارم میکنم یا جا ببینم دیگه طرف خیلی داره تو خطامنیم تلفن رو برمیدارم و به قول معروف جلوی کارشون میگیرم اینجاست که ما میگیم افسایش عدم تمرکز و همراه با کمچول متمرکز جمله آخر سه تا هم اونجا توی آخر کاهش بخش‌ها و واحد‌های ستادی یعنی چیست تو؟ به تو چه که؟ داخل تو داخل همه اونو رو بیا نداری ببخشون ببخشون ندرین برکنه اموزن ندرین ادایی نجی کردن آره به من گفتن این همچید کاهشه آره تحین لفته آره الو الو الو